بسم الله الرحمن الرحیم العددو رسیدیم به بحث عدد در چند درس اینو می آورد؟ به خاطر این گوشاشته یک تذکیره و تأنيسه تذکر و تأنيسش الامثله چار گلوه از را آورده احکامات مختلفی داره حکم تمام اعداد یکی نیست قرأتو ثلاثت کتبن أقمت بالأس... بالإسكندرية <تصفيق> ثلاث تحس اشتواها جرى ورد ثلاثة قرأت ثلاثة كتب أقمت بالإسكندرية ثلاثة ليال كتبت عشرة أسطر بالمدرس... بالمدرسة عشر حجرات خب سرورا میبیریم اعداد 3 تا 10 معدودشون همیشه جمع هست جمع و مجروف اگر عدد مذکر باشه معدود مونسه اگر عدد مذکر باشه معدود چیه؟ یعنی اگر معدودی که ما میخواستیم بکارش بریم مونس بود اون موقع عدد و مزکر به بکار ببریم اگر معدوده مذکر بود عدد رو موننس بکار میوریم مثلا شما میگی من دیدم تا مرد میگی رعی تو سلافت رجالن چون رجال مذکره عدد تو چی بکار میوری؟ موننس یا مثلا رعی تو سلاف نسوطن به این شکل خب این اعداد نقششون میتونه فایل باشه اگه شما بگی جاء ثلاثت رجالین اینجا نقشش چه هست فایله دیگه رأیتو ثلاثت رجالین اینجا نقشش چه هست مفرول بی هست میتونه مبتدا باشه مثل مثال آخری بالمدرستی اشرو حجراتین اشرو اینجا مبتدای مبتدای مؤخری به المدرسلتی هم جار و مدرور هست میتونیم بگیم شبه جمله خبر یا میتونیم بگیم متعلق به خبری که حصف هست محضوف هست خب نجح سلاست عشر طالبان اینجا دیگه نه اینجا نمیتونیم بگیم سلاستو چرا؟ تو اینا قبلا در مورد چون احد عشر سلافت عشر اینا مبنی هستن اینا چه هستن؟ مبنی هستن بالی اشتره تو ایرابشونو البته هم بازم میگه اشتره تو سلاف عشرت ببینید از سیزده سیزده تا نوزده معدودش مفرده و منسوب. در قرآن اومده رأی تو احد عشره کوکبن میبینید که هم مفرده و همچی منصوبه دیگه نگاه میکنیم اگر اگر، اگر معدود مذکر بود قسمت اول و موننس به کار میبریم سلاسته عشره سلاسته عشره طالبن طالبن مذکره قسمت اول عدد چی هست موننسی بله اگر این معنس می بود مثلا طالبتن می بود اینجوری می گفتیم نجحه ثلاثه عشرتا طالبتن متوجه شدید؟ خود کلمه عشر مطابق هست اگر مذکر بود معدود این عشر مذکر میشه و اگر موننس بود موننس میشه. ولی اولیش بر عکسه خب تو قود نگه که بحث تو نمیکنیم بریم جلو ت بال حجرتی کرسیان، اندی تسع عشرتا سوغ،فل حافیرتی س و گروه سوم بالقریتی مسجد واحد. برای تو قلمین اثنین را یوسفو احد عشر کو کرن کتب تو رساله عشرت واحد حبر واحدون و تلمیزن اینجا کدوم عدد آورده بود؟ اینجا یک دو آورده بود که بعدن توضیح میده چه حالاتی دارند در قسمت قواعد؟ بعدش میارش شاحت تو نحو 100 جندي قل من یعیشو 100 امن کم پیش میاد که شخصی زندگی کنه چند چقدر 100 سال قدم 1000 صائح و 1000 صائحه اینجا احکامات 1000 رو توضیح میده در این قسمت غاب المسافر عشرین یومن اشتريت 20 عشرین دجاجتن بیایید در قسمت خواهد. بله خب یک نقطه دیگه میمونه یک نقطه چی میمونه ترکیبش کنم الان که فردا روز حل بشه براتون موقعی که میگیم نجحه ثلاثت عشر طالبا اینو ترکیب کنم که فردا روز نمونه ای داشته باشید نجحه چه فعل ماضی مبنی بر فتح هست ثلاثت عشر این یک کلمه مرکب قبلنها خود دید هر دو جزش مبنی بر فتح هستند هم اولی و هم دومی هر دو جزش با هم میشند فائل شن فائل بابا موفق شد 23 طالب طالب میشه تمیز 13 پس باهم میشن چی؟ فائل محلن مرفوع طالبان میشه تمیز گفت که مبنی بر فتح سر دو جز خب ایرا مبنی ها دیگه تغییر که نمیکنه کنه شدی؟ اونجا نه اونجا گفتیم تو سلاست کتب اونجا مخلوهی بود ولی اون با فتح منصوب بود اون با فتح چی بود؟ میگیم منصوب با فتحه قرأت ثلاثه کتب میتونیم بگیم قرأت ثلاثه کتبه نائب فایل مرفوع با زمه چون اون مبنی نیست ولی این نه اینجا مرکبه هر دو جز مبنی بچی هستن مبنی بر فتحه هستن خب بیایید در قسمتی چی هست جان در بالقريه بله در موسى مسجد یک مسجد است بیایید القواعد خب بالقريه جار و مجرور مسجدون میشه خبر مبتدا مؤخر بالقريه میگوییم جار و مجرور متعلق به خبر محضوف یا میگیم خبر مقدم یا میگیم چی خبر مقدم قبلا خوندیم خبر یا جمله یا شبه جمله واحدون صفت ما سده خب القواعد سدو الاعداد من تلافتين إلى تسعتين تكون على أكس المعدود أعداد السي تنو مي باشند برأكس المعدود برأكس چه؟ برأكس معدود. مفردتا او مرکبتا او معتوفا علیها اعداد از سیطانو چی می باشند؟ برعکس معدود. خب. معدود می باشند, باشند. جان؟ برعکس معدود مفرد می باشند چونکه معدود جمع است بجاند. بله؟ برعکس معتوب برعکس چی؟ یموراکا ده جان میشه یا مفهم میشه یا مثلا چی کاملا برعکس چی هستند؟ برعکس معدود هستند پس اعداد از سی تا نه برعکس معدودی باشند برعکس چی میباشند مفردتن بله او مرکبتن یا زمانی که مرکب باشن در مرکب هم برخلاف معدود هست چطوری در مرکب؟ ببینید مثال نجح ثلاثت عشر طالبان اینجا هم برخلاف معدود خلافت مؤنس هست طالبان چه هست؟ مذکر پس چه زمانی که مفرد باشن؟ دقت داشته باشید برعکس معدود هست چه زمانی که مفرد باشه. مثلا سلافت و برعکس معدود هست سلافت و کتبن کتوب برعکس مذکر پس چه زمانی که مفرد باشند چه زمانی که چه باشند مرکب باشند و چه زمانی که معطوف باشند مانند مثاله في الحظيرة تسعة وعشرون بقرة إن جت وعشرون عدد عدد ب عدد مركب ليس در مثلاً در عندي تسعة عشرة صورة عدد مركب تسعة عشرة مركب در وعشرون معطوف معطوف معطوف له تسعة وعشرون إن جاهم برعكس معدوده معدود بقرة مو نسي أن پس دقیق کنید در قایده الاعدادو من ثلاثتن الى ثلاثتن تکونو على عكس المعدود اعداد از سه تا نه از سه تا چند؟ می بر معدود مفردتن چی اون مفرد باشه؟ او مرکبتن چی چی باشه؟, باشه. چی مرکب باشه؟ از یازه تا نوزه؟ و چه احترق. نه یازده دوازده فرقون کنه بعدن توضیح میده بله پس چه عدد؟, چه عدد مفرد باشه چه از سه سی... تا از سه تا داره توضیح میده خب از سه تا نه یازده دیگه شاملش نمیشه 11 و دوازده شامل یک و دو هم شامل نمیشه احکامات اونا رو توضیح میده اعداد سه تا نه سه تا معدودند چه مفرد باشه مانند مثال اولی ثلاثت كتب میبینیم برعکسه برعکس معدوده چه از تا نوزه اینجا مرکبه نجح ثلاثت عشر طالبا میبینیم که طالبن با ثلاثت چه جو پس سیتانو چه زمانی که تنهایی باشن چه زمانی که مرکب باشن و چه زمانی که معطوف علیه ها باشه چه زمانی که این سیتانو معطوف علیه ها باشه یعنی بعدش عدد دیگهی بیاد بابا این سیتانو معطوف علیه برعکس. برعکس اینو فهمی دید قاعده رو؟ معدود برعکس معدود هستن سیتانو حالا چه تنهایی کار رفته باشن چه در ترکیب کار رفته باشن چه معصوف علیه قرار گره سه باشن بله برعکس منظور در مذاکر معنیس بودن با هم چه هستن؟ برعکس, برعکس. این قاعده سد و سوم هست اما قاعده سد و چارم العدد عشرت یکون الى اکس المعدود این کهانه مفردن عدد ده برعکس برعکس چی می باشه؟ معدود می باشه اگر ده مفرد باشه مانند در رعی تو یک کتب تو عشرته از تورین تو در همین همسل گروه اول بیایید عشرته از تورین می بینیم که زمان که عشرته به شکل مفرد بکار رفته به شکل چی بکار رفته؟ می بینیم که برعکس چی هست؟ معدودش هست محنس مزاك... افتورتی هست مذکر پس الادد و اشرتو یکونو على اکس المعدود امکانه مفردن بر اکس معدود کلمه اشرتو زمان که چه باشه وعلا وفقه امکانه مرکبا و بر وفق معدود هست اگر مرکب باشه معنان نجح ثلاثت عشر طالبان عشره اینجا مرکب با سلاسته اینجا دیگه بر وفق طالبان هست طالبان مذکره هم همچه هست؟ مزکره. مذکره اشتره تو سلاسته عشره برتقالتن برتقالتن موننسه عشره همچه هست؟ موننسه, موننسه. فهمیدید؟ پس عدد ده زمانی که مفرد به کار بره برعکس معدودشه ولی زمانی که مرکب به کار بره اینجا بر وفق معدودشه اگر معدوده مذکر بود عشر به کار میره اگر مؤنث بود این هم مؤنث به کار میره اشرته متوجه شدید اما کلمه ده نه دیگه اش بله بله فقط یعنی ده چه که از 10 تجاوز بکنه شده 20 30 اینا دیگه همش یالغان پس اما بریم قائده بعدیمون یعنی قائده سد و نوات واحد و اثنانی دو عدد یک و دو یوافقان المعدود موافقت میکنن با چی؟ با معدودشون مفردین او مرکبین او معطوفا الیهما در هر حالت چه مفرد به کار روند چه مرکب به کار روند چه معطوف الیهما باشند یک و دو حالا در امثله گروه سوم بیایید بالقريه مسجدون واحدون مسجد مذکره واحد چیه؟ مزاکر. اینجا مفرد به کار رفته برای بله. تو قلمه اینی قلمینی اینی ببینید کاملا مطابقت داره اینجا ولی چی بودن اینجا مفرد بودن اما در حالت مرکبشون. رعا یوسف و احده اشاره کوکوان در حالت مرکب بودنشون احده اشاره احده مفرده مذکره کوکوان هم چیه مذاکره. بله، هم اونجوریه اشاره هم اینجوریه کتب تو اثنته اشرته رسالتن اثنته اشرته رسالتن رسالتن موننسه اثنته هم چه هست موننسه اشار باز هم مطبیقت از اون معدود دارد بله بله اشاره که خب در بقیه هم مطابقت داشت فقط اینجا نیست ما بحثمون الان روی خود کلمه احده هست خود کلمه افنتين هست متوجه شدید؟ تو نحو 100 جندي الان قائده سد و هست بیایید 100 و الفون و الفاغ الوقود سد هزار و الفاغ اقود یعنی عشرون سلاثون، اربعون، خمسون اینار میگن الفاظ عقود بله میگه تلزم صورتاً واحدتاً اینا همیشه یک حالت دارند اینا همیشه چی دارند؟ دیگه الفتون ما نداریم خب سواء برابر اکان المعدود مذکرن ام مؤنثا برابر است که معدود مذکر راشه یا موننس ماننده ببینید شاهدتو نحو مئت جندیین اینجا جندی مذکره مئت یک جور ثابته قل من یعیشو مئت سنته سنته موننسه باسم مئت تغییری نکرد الفم اینجوری هست قدیمه الف سائح و الف سائحه در همین یک مثال سائح مذکره سائحه موننس ولی الف سر جایش یک صورت رو لازمی گرفته یا مثلا اعداد اقود غاب المسافر 20 یوما اشتره تو اشرین دجاجتن یوما مذکر دجاجتن معنسه ولی اشرین سرجائشه البته 20 اعرابش مثل جمع مذکر سالم بود چون اینجا اشتره تو اشرین دجاجتن این نقشش منصوبی هست و مفهول بیدیت منصوب شده این بحث دیگه هست پس دوباره خلاصه کنم تمام قواعد رو اعداد رو اینجا ببینید مذکر و مؤنث بودنشون رو توضیح داد عدد سه تا نخ تون یک و دو چه مفرد باشند چه به شکل مرکب کار رفته باشند چه معطوف علیهما باشند همیشه مطابقت با معدود دارند اون مذکر بود این هم چیه؟ یک و دو مذکرند اگر معدود مؤنس بود یک و دو چیاند؟ مؤنسند فرقی ندارد چیه مفرد بکر رفته باشن. چه مرکب مانند احده عشره کوکبند و چه معطوف علیه ما مانند حبر واحد و سلاثون تلمیزند ببینید اینجا معطوف علیه ها هست واحد سلاثون معطوف بر واحد هست اینجا باز هم میبینیم فیلمیزن مذکره واحد چه هست پس عدد یک و دو مطابق با چه هستن. با معدود چون اما سه تا نه ده جداغانه توضیح میده ده مذکر محاسم ها شون بله. بله الان سه تا نه این کتاب جداغانه توضیح میده ده, جد ده جداغانه اگر یادتون باشه در هدایت ده با سه تا ده رو با هم توضیح میده بله البته مشکلی نیست اون توضیحش طبقه اون که اون توضیح داره درست در میاد کاری نداری خب سه تا نه سه تا نه زمانی که مفرد به کار برند اون موقع برخلاف چه هستند برخلاف معدودشون هستند که توضیح دادیم؟ یعنی معدودشون جمع هست و مگرور اللحاظ اعرابی اما اللحاظ مذکر و مهنس بودن اگر عدد معدود مذکر باشه عدد چه هست؟ مهنسه. اگر معدود مذکر باشه عدد مهنسه مخالف است. چی زمانی که سه تا به شکل مفرد به کار اما زمانی که مرکب به کار چی؟ باز هم هیچ فرقی نداره. و زمانی که معطوف الی ها باشن باز هم هیچ فرقی نداره. مثل یک و دو یک و دو موافق بودند. چه زمانی که مفرد به کار چه زمانی که مرکب به کار چه زمانی که معطوف الی ها می بودند موافق با معدودشون بودن سه تان روح برخلاف معدودشون هستن چه زمانی که مفرد بکار بروند چه زمانی که مرکب بکار بروند و چه زمانی که معدود علیها باشه معکوف علیها باشه بعدش اومد عدد این شعره که صوفیو بدوشتن خب بینبار چی شده بینبار امون احراب شد احراب شد گفته بله سی سی خب بیاید, بیاید عدد ده رو کاملا توضیح داد عدد ده اگر مفرد بود برعکس محددش بود اگر مفرد بود برعکس چیش بود بله مثلا کلمه بله اشتره تو عشرته کوتوبن زمانی که مفرد به کار رفته بر برعکس معدود اون مؤنث این چیه مذکره ولی زمانی که زمانی که مرکب باشه برعکس میشه احد عشر کوکلن زمانی که مرکبه مثل یک مثل یک موافق با معدودش میشه موافق باتيش موشي؟ رأيتو أحد عشر كوكباً، كوكبان كوكبان مذكره عشرة هم چي؟ مذكره رأيتو إحدى عشرة امرأتان عشرة؟ كل م... ام امرأتان مؤنسة فس عشرة هم چي؟ عشرة هم چي؟ مؤنسة دهو هز اتی و الف دیگه مثل دیگه نداریم که بیم سهلا سه تاو سلاثة. الف همیشه ثابته میآم هم از این لحاظ میشه چیه ثابته؟ اشاره وقتی ترکیب باید هر درست. بگیم مطابقت بله مطابقت با معدید میشه. مزکار باشه باشه کلمه ده مزکره. معدود موننس باشه کلمه ده موننس به کار میره. اینا تمام احکاماتی بودن که گفتیمشون بریم درس بعدی